حکایت، حارون و رشید را چون ملک دیار مصر مسلم شد، گفت به خلاف آن تاغی که به قرور ملک مصر دعوی خدایی کرد، نبخشم این مملکت را مگر به خسیسترین ترین بندگان. سیاهی داشت نام او خوزعیب، در قایت جهر، ملک مصر به وی ارزانی داشت. پگوگاند عقل و درایت او تا بجایی بود که طایفه ای حراس مصر شکایت آوردندش که پنبه کاشته بودیم باران بی وقت آمد و تلف شد گفت پشم بایستی کاشتن اگر دانش به روزی در فزودی زنادان تنگ روزی تر نبودی به نادانان چنان روزی رساند که دانا اندران آجز بماند، وقت و دولت به کاردانی نیست، جز به تعیید آسمانی نیست، کیمیاگر به قصه مرده و رنج، ابلهان در خرابه یافته گهد.